أعوذ بالله وعنشه الحمد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة الله على سيدنا رسول الله وعاله الطيبين طاهرين المحسومين ودهت الله عمد وعلى مداره اجمعين الله وفرنا جميع المشارمين وارحمنا وبرحمة كراء جمله از این روایات رو خوندیم راجع به به اصطلاح سبه مؤمن و گفتیم یوان یعنی ببینیم از روایات چی در میاد به اسطلاح باب بعدیش البته باب تنهر المؤمن چون تنهر المؤمن شبیه سبه باب 159 عباب افتامال اشتا این باب رو هم میخونیم حالا شب خیلی میشن روزی با تو رو که اخلاقی تو بخونیم نورانیت بیدارو کنیم محمد بن عقوب ان عبی علی اندر که خب از اجله اصحابه و از بزرگانه ان محمد بن سالمی شد چه خیلی وضع روشنی نداره در قوم بود ان احمد بن ندر داره برای خیلی داره ترد یه وقتی هم در بحث مقاصر متعرض احوالشون یه بحث خالش میشه خیلی ان امر ابن حالا طلبات عمومی شمره اما زبط شمره انا امرویبن شمر اما شمره معروف هم شمره شمره بزر جوشن هم امرویبن شمره از کلیم ایشون از ظاهر اعباس انجوشی تردهی پشتر بیان که استداف ظاهره جزوی بزرگانه خط غلوب هم هست اهل جوفه و از رغبات معروفیست که از جابره نیزیده جوفی نرمو میکنن من یه وقتی چند باله نهی یک بار کراه برای هستم بعضی با این که مثلا در یک خط خاص ما ممکن ممکنه در مسادر آمه بیشه را جبونه باشند. یکی از این عجائز همه امراض هم می شنده ده که از خط قولات آدتن روزی به قولات سنوی خوب کمتر می ما روزی به ایشان تقریبا هیچی چی نداریم یعنی در خطول رجالی قدیم در تضعیف نجاشی و اما در کتوب احل سنت نسبتا این شرحال مفصلی ازش هست واقعا عجیبه که امروز میشه در این که افیل سنت و خیلی هم مرد مغید و متعبد و نرمون در کتوب احل سنت از قول معذن یه مسجدی که بهشون در اونجا میره نماز معذنه میگه من هیچ جهان شد درم که بیرم امروزی سال من توی مسجد نیستم یک بار نشسته من برام بعد بر انورشنال هر وقت من میای تا اون قبل نه. اونجا نشسته و تومسی علای امام حالات ایشان متاسفانه در مصادر عامه بیش از مصادر ماست ار ابو جنهر علیه سلام جابر بن عبد جوفی قال ما شهد رجل را رجلین به قبر الا با به احد و ما این مضمون ان شاء الله ارزی می کنم در مصادر عامه موجوده میخونیمش را امکان شهد علاقا فرنس ها در و امکان مؤمنت رجع کفر و علی. این به مزامین متعددی آمده این جمله این که اگر انسان ایدیو رو بر مؤمنی گرفت ام... که بیان کرد از دنیا نیدونه اگر خودشون غیر رو انجام بده و رواق صدوقی اقابل اعمال هن عبید. پدر خودشون این احمد بن ادریس این احمد بن ادریس هم ابو علی عشعریه. انا احمد ابن عبی عبدالله دو طریق داشته مرمومه احمد ابن احمد ابن هم برقی پسره انا عبی انا احمد ابن نرز طریق مرمومه شهی صدو روشندتر اصطور کلی باز حدیث شماره دو و انهو یعنی ان عبی علی اشعری کلی از عبی علی عشعری. همون احمد ابن ادریست از محمد ابن سنان، حتما کتابا چیزی هم نوشته نه؟ آنی که محمد حسان حسان محمد ابن حسان رازی این از علمای راز بوده راز تهران در اختلاها قدیم شهر رو ری میگفتن نسبت رازی میگفتند. این دیارا حالا ای چیزی هم حسانه این برش کرد در از بر هم میگفتن به ریل میموتن ریلی مثلا خود شهر ریل میگفتن اما نسبت به شهر و رازی میگفتن ان محمد ابن حسان رازی ایشون تضعیف شده ابن رایی ها مطمئن بر این خط قلوب رو ان محمد ابن علی. این همون سیرکی معروف که به کز خیلی مشهور. ان محمد نخوزیل خوزیل ان عبی حمزه محمد بن چند تا در این طبع شده از بی سیرفین نه هنوز مثلا خود من یک وصول نفسی، اطمینان نفسی پیدا بکنی که چیه. شاید مثلا در این مدت عمر خودم شاید سرها سرش محمد بن خزیل دیدن این کالا رو کامپیته مراجعات شخصی خودم شاید یه موردش داره محمد بن خزیل موردش پیدا هر هشام مطلبه همش محمد بن فوزهید مطلق من شرارا از سردن وقتی یک اسم مطلق میاد مرد میشه مشهور حالای تصاصل عین ما اینقدر به جهر آمیخته شده یک انسان مشهور رو نمیشه این چراسته به این مشهور وقتی به یکی کسی گفتن محمد بن فوزهید دیگه یعنی فکی مشهوره دنبازش نمیرن مثلا بیان آهای خویی فرمانیم یعنی آهای سری دبال قاسم منصری خویی مثلا فرزن فرزن فرزن فرزن. <تصفح> چه کسی که مشهور شد این طبیعتش اینطوره خیلی عجیب خیلی مغید بودن در بسیار بهش زیاد ازش بزرگان از شهر که اینکه آقای علی سیرافی حسین سید ازش ناراضی بودن دیگران نمیخواوالو دستش بشن همش مطلقه نمیدونم واقعا خیلی مشهور بوده که قید نمیزدن هر حال فعلا ما هنوز درست نشناختیم بعد از محمد بن قزیرا شي گفته قالن ضعیفون هر آمپلاینده نشان دادن طوری که بعد کی؟ اگر آبی حمزه سومالی اگر ان دادن صلاح درست باشه چون آبی حمزه یک زود فوت کرده بعد امام مساجد امام مساجد وید مدد مختلفی چون از جز اصلات و سنجید. سمت آباء عبدالله علیه السلام یا قول اذکار رجل آخر المؤمن اف خارج نمی‌داردیم. و اذکار انتقادری کفر احد هم ما. و الله من مؤمله. انلا کو موذلون اروا اکیل مومن سوء خیلی دولت قشنگه رسول الله و رواق برق المحاسن محمد بن علی همین سیرفیه محمد بن علی برده هم سیرفیه و ان محمد نیهی این ان محمد بن نیهی برنجله خولگی ها اشتباه نشه این از پای صحابه و سایه دیو خاصیه مرقوم کلمی ان محمد نیهی و احمد بن به اصطلاح محمد بعد از احمد بن محمد، آن علی بن الحسن اینجا علی الحسن در اون جا هم ایشونه. الحسن باشه ولی حسن علی باشه. علی بن الحسن باید. چون علی بن الحسن اینجور دلیلهاها این موردی ابنا حضار الحساره. مرمو و کلی از ابنا حضار الحسار با یک واصله هم میکنه از ابنا حضار الحسار با دواسته دو که مهم میشه همین احمد. به ذهن من حسن نه علی باز باشه علی حسن اینجا این اگر که این دسته های کامپیتر این کاف جید کافی رو این حدیث در بیردی اونجا توضیح نهده من تنه اشکال داد حالا من به نظرم بیشت می می یاد من یاد اشکال الان دیرم نگاه نکنه باید اشکال ان محمد ابن عبدالله ابن زراره چون اون ابن فضال هم از این این انه ها به محمد بن یحیان ان احمد احمد اشعری ان ابن سنام محمد ابن سنام ایشون تضییر شده محمد ابن سنام لکه من سابقا توضیح دادم چند بار توضیح دادم مرحوم اشعری که به کوفه میاد یه مقداری از میراث های ابن سنام قبول میکنم با خودشون خوب میادم با این کارا محمد ابن سنام برام برامبر معروف زعیفه احتمال داره احتمال داره میشون که در کوفه آمدن نگاه کردن اون میراث های محمد النسان که نقیه و قابل قبوله با خودشون آورده. همین باز باشه کی داره همونتی همین من رو همین میگم نگاه حسن علی و فضال ها ها داره حسن علی و نگاه میگم حسن شما شکرید قامدش اینه حسن علی فضال باشه حسن, حسن علی ابن علی بن حسن که باشه پسرش علیه چون ابن فضال پدر اسمشون حسن سه تا پسر داره علی و احمد و محمد یا ابن فضال های پسر علیه احمد و محمد حسن در اسامین اینقدر مشهور نیست چرا من نیستن اما به شهرت علی میریست بعده. در هر حال خوب به بخش محمد علی صنان بلا شک آثار خط قلوبه بلا شک توضیحات جدیه باید گفته بشه لیکن در این حال آثار غیر خط قلوب هم داره به نظر این طور میاد این نقطه تاریخی چون محمد علی صنان تجعیف شده الان شما این صنعت تو کافی میبینید شاید گیر بکنید برای جواب بزن میشه. ظاهرن احمد اشعری که به کوفه آمده از نکنه نرشته نشده، ما هرش با حقص و استظهار شخصی خودمه ظاهرن احمد اشعری اگر سفری که به کوفه آمده از قومان کوفه در نقل حدیث سابقا مثل ار رکل سفر حدیث سفر در راه حدیث ترکه در راه حدیث به نظرم میاد که ایشان آثار محمد رسالان رو دیده اونایی که صاف و مستقیم بوده و ماشه نداشه را اجازه گرفته و نرمی کرده به غم آمده پشت کرده. و هر حال این مسلمه که مقداری از آثار محمد روزنسان به مقدار تقیم فراوانی در کافی موجوده احتمال بیدم به بی این معنا بوده که مرموم احمد مثلا بعد مرموم کلینی در این فکر بودن که آثار محمد سلام که قابلت قبوله و دوسته مثلا ان حماد عثمان این خود حماد عثمان کتاب داره اما ربئی ربئی اهل بسره است من تیجه احتمال میدم عوان عثمان داشت چون عوان کوفه بوده به بسره میرفته ببین حدیث اینجوریه کلیگی که نمید میکنه قومیه این سیر حدیث ما همیشه میگیم بردی دخته اما خب نیکی که احمد هم و انهو محمد ابن یحیا هم گومیه احمد هم گومیه تا اینجا گومیه بعد میره محمد سنان سلام حدیث كوفه از قوم میره كوفه محمد ابن سلام کوفیه حماد ابن عثمان یا عوانب اثمانان باشه کوفیه بعد از اونجا میره بصره غبعی ابن عبدالله و خوزه این بصریه تسرمون ان عبی جعفر علیه السلام قال ما من انسان یت انو فی این مومن الا ما تب شهر میره. و کان غمنه غمن بخونی یعنی کان جدیرن کان غمنه مناسب و شایسته شد ان لا یرجئ الای خیر مظلوم شی تو فضوح در کتاب عقاب اعمال انعبی از سعد بن عبدالله محمد بن سیدنا علی بن خطاب اینجا ایشون علی حماد از انسان تعریف ایش این است واضح هر ماده نوثمان و هممادردن ایستاب به احتمالی که من میدن هر دوشغل از سرش اوانده آرس داشت که من خودم میدن. چون اوان از خاییصش این بود که اهل کوفه بود کهجارش به بشره بود اوانکستصا نیست که هر دو شهر رو در کرده هم کوفه هم بستره و هر دو نرا رو درمان و هم محمد نلی ماجیله به این اما محمد نیه مجه اح از بر صو ها این ادیت کلیدی هموم شد میث برصدور بود ایشون نه از محمد ابن علی ماجیبه که محمد ابن به استدا ابل باشه انعمیهی از کل این انعمیهی در کتاب سدو خیلی زیاده خیلی پراغانه نه در کتاب فقیق در کتاب های دیگه خیلی زیاد داره محمد ابن علی ماجیبه وی انعمیهی این هم می که ما سی سال چهوه تا چهوه جا کار می کنیم سر کلیه نگه جد به اینه اون ببقیه نجاشی اون محمد رو میگه جد به اینه ایشون میگه عموشه نفهم داره از اون اون خب اصال صدوق بقیه دیگه صدوقش که باقیه کنه نبودی آنه یا شده عموش شده هر جا در صدوق آمده انعمهی از عبارت کلیه نجاشی در شرفالش به وضوع در میاد جد بشه پدر علی دیگه محمد محمده نهلیه محمد محمد نرقاسه مثل پدرمونم من نمی کنم منوزم نفهمیده این چیکارشو کنی هنوز سرده نه بودی مگر توسط کن که احضار برده از اون آخر <تصفح> هنوز نفهمیدی چه صبح این آقا عموی ایچانه یا جده بله اون که بحث قبلی کنید شاده را اما نجاشی نسبنامیشو ورده خو محمد نسی از سی از پسرش پسر اونم محمد خیلی بریده که ما اصلا یه احتمال شباه بدیم و هر حال ایشون ایشون داماد برقیه خود همین جدی یا دا باشه داماد برقیه اصلا محمد این علیه کوفی سی ابو ایشون در همون زمان ها میاد در قوم یکی از کسانی نیست که میراسای کوفه رو به قوم قبوله چند دفعه من عرض کردم بیشون خودش تعریفات اگر من یادم نمیاد اگر بوده همهش شای آثاره قطعاً خدمت امام نرسیده یعنی روایات او از امام نیست مثلا محمد رو علی کوفی این س... محمد ابن سلام این از که ها محمد رو در رد میفهمن؟ در در موقع کذاب بیرون شده از قوم اما از کلم روایتی در میراستای قوم هنوز موجوده شخصش از خان گیرون کرده روایتش نه هنوز روایتش در میراست قومی ها در نوست محاسن هست در کافی هست هنوز موجوده اندل مفضل ابن بدون شک محمد رسالان یکی از بزرگترین راویان آثار مفضل ابن است. حالا دقیقا در چه سالی با او برخور کرده برای ما واضح نیست بد مثلا بین سلطن، سلطن، چون مفضل مفضلابن عمر زمان موسن جعفرم در کرده اما گوشه نشین بوده به نظر من میاد که مفضل در اون زمان مشغول تعلیفات بوده چون تعلیفات عجیب هم بشن به نسبت داده شده به نظرم دیه از سحنه سیاسی اجتماعی کوفه خودش کنار کشیده در گوشه این مشغول کارهای علمی بوده ظاهرا محمد اسلام در این وقت خدمت یشون رسیده قال ابو ان الله عز خلق المؤمنین و این هم پیش محمد نلی کوفی داره هم پیش محمد بن سنان داره هم دوست حالا کلام مفضل داره اما خیلی در بایدش کلی گاهی ها خیلی لطیفه ان الله خلق المؤمنین من نور و جلال کبریائه فمنتعن علیهم و رد علیهم در الله حلالله خیلی در بایدش خیلی لطیف هم چی میگه؟ از از از خیلی انسانگرایی داره به باید فمن تهنه علیه هم ورد علیه الله فقدر رد فی ولی الله و این نماه ها شرک و در بباره ما داریدیم اصلا اگر مثلا در بچه اصلا شرک و شرک ها میشه علاقه و بر رواه برقی محاسن این مفردال ابن عمر این داره خطن محاسن نه برقی نه اغلبش باید اینجور باشه برقی پسر ان ابی عن محمد بن ان عن المفذر این الا سند صفر حدیث شماره 5 علی حسن محمد طوسی این حسن مراد پسر مرحوم شیخ طوسیه مرحوم شیخ پسرش رو به اسم پدرش نوشته خودشون محمد بن حسن این آوا حسن بن محمد پسر ایشان. ایشون امالی رو از پدرش نوشته عمالی اصلاً به پسر نسبت میشه چون نوشته به پدر چون ایشون بوده انه حسین ابن عبدالله داره این قضایی باشه انه طلع اکبری که محمد ابن از بزرگان اصحابه انه محمد ابن همام همام بغدادی معروف بودیشون برواعلی بغدادی نه همه از بزرگان هست این حدیث هم که بغدادیه شیعه در بغداد اونیدی بغداد, بغداد. ان حسین ابن احمد المالکی. اس چیزی داریم علاوه بر توضیحه واضحی الان تو ذهن نمیاد ان محمد بن ایسد نوبهی فنی اهمیت نزدکریه یحیی بن زکریای زکریا شیعه طولانیه و نگاه های مرحوم ابو عریوب انصاریه ان داوود بن کثیر احتمالاً رسوئف باشه نشه قال رسول الله اگر اون داوود بن کثیر خود ما باشه ان الله عزوجل خلق المؤمن من نهازمت جلالی به قدرته فمن تهنه علیه او رده علیه خوله فقدره الله. به نظر محن مفضل شدیمتر بود این بخون یکیه همون محنش خیلی آهنگ قبی و بالایی داشت این باب بعدی رو هم می‌خونیم به خاطر یک نقطهی که همان حرض هم می‌کنم، با عنوان باب سلو باور باب تحریم لحن قیل مستحیح ببینید ما یک باب تحریم سبد مؤمن داریم یک باب تحریم تن داریم یک باب تحریم لعن مؤمن این که الان مفرحه و از کردیم بحثاشو اشاره کردیم که آیا لعن با سبد یکیه یا دو تاست. اصلا ما یک باب دیگی داریم برمانون باب لعن مؤمن نه سبد مؤمن و نه تن متاسفانه در کتاب سدو در کتاب سال وسائل این باب رو به با این عنوان نیوازه اینه مخواهیم در همین بگم چون ما مخواهیم در وقت سد برمونه سد برد لعنم بشیم ایشان سال وسائل مثلا دیگه باب سال 58 باب تحریم سب مؤمن، باب سال 59 باب تحریم سن هر مؤمن، باب 6 شست باید اینجور باب تحریم لعن مؤمن. این وقتی که عوض کرده بخ شما بخند بگازید که مرحوم صاحب وسائل در کجا بحث لهن آورده؟ پیدا نمی‌کونید کجا؟ صاحب وسائل بحث لهن اینجا آورده. باب تعبیر لهن غیر مستهل وجه علی مومنه که مومنه غیر مستهل یعنی که یه مستهل لهن باشه و مرتجع بشه و مؤمنه باشه شیعه باشه اونجا غیر مستهل لازمه. حالا یعانه اگر این می به این تعبیر می‌کرد به نظر من زیباستر و پشنگسند بابا تحبیل لن یکی سب یکی تن یکی لن چون برد داره از سبب این اولاقیست که ایشان گناهان زبانی نسبت به مؤمن اوورده مؤمن یا به مؤمن که از داره میبک داره رنگاه همین سبب داره مثلا باب بعدی باب تحقیم صهمت مؤمن باب بعدی باب تحقیم اخافت مؤمن المؤمن ولو به نظر حنابین باب رو به این عنوان آورده اینجا اگه بابو تحقیم لحن موامن میگم راحتتر بودیم روشنتر مطلب در میاریم و هر حال بخصون آیا ما فعلا روایتی با عنوان لحن موامن داریم یا نه خیلی عجیبه میگوی روحبت ما واقعا پرتیم میدونیم زیاد در لحن موامن یا مسلم اما ما نداریم نه از که از اجایب کاره جدی به که وقتی ایان زیاد داره، منش این من مورا قبول کرد حدیث اول ما مرموم همیری در باقل اصناد خودش از حارون ابن مسلم انم از عطم صدره خب عبدالله این جفر همیری حدود 300 و فاتشه تا 27 شن زنده بوده عبدالله این جفر و با دو واسطه از امام صادر نرم بکنه چه یه غربه اصناد داره این به اصلاح روایات اینیدی در قربه اصنات به خاطر ایشون مسلم هم مشعده هم علی عبدالله سال بدوز سی کسی است کسی مثلا سال و سال باره ما مصادف فاصله سال و سال باره 5 تمنه هست یا چار دو که داره اسناد داره و سر این رو به هم که عرض کردید مرهوم مسلمه خود حاروم خوبه اما مسئله توصیه واضحی نداره آن قال ابو رو زیاد که واقعا داره که دارم و واضحی نداره با شواهر جو بشید اقعای که من صاحبه ها ترت داده دینم و اگه کسی کسی رو کرد این در قلم و عالم و باطن ما به این دوتا میگونه که این اگر اون طرف مرعون بود خب میخوره اون طرف. اگر طرف مرعون نبود در خود لائن به شرکت و رجع از الان وکان خود این لائن با اولاست می حالا این که گفت که به ملازمه و به تلازم و با بعضی خصوصی ها به حرمت لعنه مومن در میل از این ندار این لبایت هم سنوی ها دارن به عهد سنو دارد رسول الله همشه ببینیم سه در و انتر انا و مومن هم ما روایتی که الان داریم در مسادر مساهل هم ترسیم در وسایل راجب لعنه مؤمن همینه این هم زیاره باید فهدر و انتل ان اون مؤمنم فیحل بکن اون لحم به خود رو نرگرده یعنی این باب تحریم لحم مؤمن که سب مؤمن چند تاره وقت بود فقط همین. این به باید تو مرحوم کلینی محمد ابن یعبوب ان محمد ابن یحیاء ان احمد احمد اشعری ان حسن ابن علی به ذهن من میدی جن حسن ابن علی باشه از در همین طبقه هم حسن علی وشعه هم داریم و مرحوم احمد اشعری علی پیش هر دو رسیده هم پیش احمد حسن وشعه رسیده هم پیش ابن فضال لیکن در کتب مثلا نجاشی علی ابن اوغن روشن لبود کتابا رواه ابن فضال اون بیشتر میخواه ابن به هر حال بین دو نطره یا ابن فضال هست یا وشعه رشا امامی اثنا فتحی ابن سنا سنان ابن علی این سند الان مشکل نداره اگر وشا هم باشه کسان سریع است اگر ام باشه موثره است قال سمع سواد جعفر علیه یقول ان اللعنه الاخره در منفی صاحبات فی در اینجا همون وعنه هم دهانه که با اعراب جرگیه به اصطلاف مجرور به من, من فی صاحبا هنی از دهان صاحبش ترده دارتی ما بین همان فه این وده و لا رجع از علا صاحبا فرقی که این مصخه که کلینی کلینی نرکرده با نصخه صدو که به بخشی با نصخه همیری همتا کتاب همیری در اخلاع کلینی هم بوده فرقش اینه که اون زیر ندارده در این نصفیه مرحومه مرحوم شناسی اون زید از کردن الان اونی که ما در کتب مثل وسائل داریم که صریحه در لعن مؤمنه همین روایت زیدشون هست فهزرو انت لعن مؤمنم فیهل نبکن فهزرو این فحذرو که صریحه این توی محن کنه نیامده اون صدر را که اگر لعنت خالص شد یا می به اون ملعون و به لائم به آخرت وینهام میمونه اگر اون اعتصاش باشه به مرعون اون به خاله به الا بلائن درمیاد ای خب این خوب میشه که لعن خوب نیست اجمالا در دل نیست دل توش به ملاصه اما اونی که تصریح باشه که لا لعن بر بعض از من بر زن یا و انت ال مؤمنه لو در کتاب وصای تو که من این وقت نگاه کردم باو پیدا نگرد پیدا مگه یه جوی دیگه ایشون به مناسبت گفته باشه این ذهب فقط توی نصفه مسعده مسعده را آمنه نه تو من تو کتاب باره مساله مسعده مسعده را آمنه مرموم کلینی سنده دیگری هم نقل کرده عمل حسین ابن محمد عشقی استاد ایشان از معلم محمد بسری عمل حسین ابن علیه اونجا از حسین ابن علی و شاه ان علی ابن عبی حمزه ان اهرده ما مثله بود به نظر من خراب کرده چون معلوم محمد تضعیفی هم داره یعنی در اواخت اونو خالش برحال معلوم محمد لاعقل لاعقلش اینکه توصیق نداره معلوم محمد قصر به ذهنی ضعیف باشه لاعقل داشته اینکه توصیق نداره از کردن مرحوم اصلاف بنا گذاشتن ایشون سران به خاطر کامل زیارت بعدم برگشتن از جاهایی که معنای استاد در توصیف تاثیر کمی یه محله محمدی چون میگوشن بنای که مثلا تراژدی شو بر روح ایشون خیلی تاثیرگذار نبود در رجال این تاثیرگذاریش این بود مثل محله محمد رو به کامله زیارت توصیف کردن بعد برگشتن چون محله محمد درس از زیارات اصلا تو تفسیر نیست اگر کاملیز در بشه اون توصیه که اشون درست کردن منحاش احتمال میدیم چون معلم محمد داده نه ما از درف نیست احتمال میدیم یا خود ایشادی نسخش خلق شده علی علیه نبی حمزه ما علی ابن نبی حمزه نده احتمالا این تو بوده انه علیه همه علیه نقوبه انه علی حمزه احتمال اینه میگیم در حال چون نسخه مرمون کنیم توسط احمد اشعری است کاملا دقیقه اون نسخه میتونه ابحامهایی نسخه رو هم برداره و رواه و صدو فی اقابل احمال انحبی انسر انحبال اند وشا احتمالا همین باشه نکته این باشه که نسخه مرمون وشا یا حالا اون کهشون که شون نرکرده ابحام ما دردیه دردیه همزه رو باشه این هم روایات ما پس ما اساسا سه باب رو فعلا روایتش رو خوندیم از مسائل. یکی باب لن که از امروز خوندیم و باب تنم که امروز خوندیم و یکی هم باب سر که از دیروز شروع کردیم من رو اصداد شد یه مطلبی رو از کتاب احیاب و علوم دین فرزاری به یک مناسبتی نهر کن بودن ایشون هم در ربع مخلکات یه دستهیه فرزاری پیشانه در ربع مخلکاتی که ایشون دارن یک مقدارش رو به اصطلاح بره با عنوان آفات و لسان از کردن ایشون برداشت منظم شده حالاته از رباید خودشون آمنه اون وقت راکی با آفات دسان را تحصیل بندی کرده مثلا الکلام و فیمالای یعنی آفات افلال آفات دوم خضور و کلام آفات سوم خوز در باطل این مرزهایی و گناه که انسان توسط زبان انجام میگه در این کتاب و در جلد سوم این چاپ ها که میخواد چون دیگه را به محفظش آفات دسانش به اصطلاح در آفات صدو هر هفتم الافت و سابعه و سب و بداعت و لسان در هفتم سب عورده الافت و سامنه ال لعن رو در آفت هشتم عورده و چون بردی از نامر بخادار ما این روطیمه که میشه بخونی احسون این که در این چاپی که من الان دارم صفحه صدسی در آفت سابعه به عنوان فحش و سب و بضاعت و یک صفحه تقریبا از این چاپ ما حالا کمتر روایات رو که نو خواهیم بخونیم بخونیم بخونیم بخونیم بخونیم بخونیم بخونیم این بعض فرموده و حقیقت او، حقیقت سب چیه با تعبیر عن امور المستبهه به عبارات سریعه خوش رو ایشون با سبیه که گرفته نه خوش اینی که ایشون گفته بیشتر به خوش. خوش یعنی ایشون میگه الفاظ زشت رو که انسان ببره به کار ببره این خودش اینطوریه. طوریه حتی ایشون میگه که غیر از اینکه که سب مؤمن انسان نواد بکنه حتی خیلی باید با احتیاط و با ذراکن مثل جاهایی که حتی در بدنش مناسب نیست اسمش رو صریح نداره ایشون نه هم میکنه ورزیشون کان عمران نه عبدالعزیز خب عمران نه عبدالعزیز صاحب نه فوقال آده بایی که با بنی آمین هم هست بله به قول محومی سیدر عزیز یعنی عبدالعزیز و کهی توفت من عمل یا کله و کهی توفت صاحب هم خرج تحت ابتحهی خوراج خوراج یعنی دومل زیر به اسطلاح این زیر بغد شده این همین کلمه بغد هم می کرده به کار ننداره یعنی اینقدر سعی می کردهه مودف صحبت کنه خیلی عجیبه انصافن اگر راست خیلی خیلی و خر از تحت افتی و خراج اون فنا ننسل و گدننه رو مایه رو میخوااست هیچ بوده مثلا چون زیر دغل مثل کمی همچین انسان به طورح میکوه و آاشوارشون میکنه و قولنا من این نخرد از کجا این دومندرم نگ زیر بر گفت منبات نریت از زیر دست یه ویژایی که مثلا ابس بکنه در لغت عربی فقال من باطن ید تعبیق به باطن ید حالا یه حالد ایشونی راجع به فکر صحبت کرده صد خیلی نگفته که می راجع به فکر بیشتر صحبت کرده که بله مثلا با انسان خیلی چیزها رو به کار نداره الفاسه. بعد در آفت هشتم هم لعن رو احل سنت به لحن بیشت ماره باید دارن حالا میخونم جا باید آقای خویم اشاره کردیم هاشش اشاره کردیم ایشون تو بحث لحن تا آمده ایشون میگه اونی که استفادی که مختصی لحن ستاس کفر است و بدعت و فصل این سه چیز مستحق لحن است و مثال کفره که میزنه بعد مثال به در مثال به دردر متاسفانه ایسا مهارم میبره میگه برده کبول که لحنس الله عزیه بود و نسارا و مجوس و عدال قدریه و خوارج و روافظ روافظ روافظ در همین جا به که اهل به درد هستن میبرم بعد در سدومش شن چین روی که هستن قد داری میگه لحنازی یا نیجای همینجا هستن کتابش همینجاست در بحث شخصی میاد میگه نه در بحث شخص خیلی مشکله چون برای شما از یک شخصی عمل فسقی هم ببینید نیمتون بگید لعنه الله چون ممکنه باید توبه کن و خدا او رو ببخشی این به این مناسبه باید حرفای نامرگوطی که شکه در میکشه دینجا تو انقیل صفحه 134 هر یک جوز و لعنه یزی لعنه ها قاتل و حسین و آمرون به قلقه ها دارن یست بود اصلا اصلا درست ن نا پس هم اون هوسن نه آمره کشیدنی ام. کل آن یادی رو اجازه نمیده. نه اون جا لری اسکود اصل نه حالا یادیو داری نهو کاتل رو تو مسلم نل من قتل علیه و کاتل ابو لعنه لعنه من چند بار از کم تو زبان و پارسیم من توی ابو لولوه لولو. سهی صحیح ابو لولوه با تعمیده دختر هشت ساله ای داشته بنامه لولوه لذابش ابو لولوه بره. به این نظاره که ثبت متواکنه میگه بله لعنی دو جایز جایزه ابو لولوه اما لعن یدیک جایزه اون وقت بله باز خودش بره. در که افنقی و هل یه جود انیقال قاطر حسین لحن الله و الامر برنده و یدنگی که قاطر حسین همیشون می‌خواد. میخواد ما از سواب انیقال قاطر حسین اما قبل توبه لحن الله که نکنه اصلا توبه کرده ها شده قبول میشین حالا یا چون در اون حاشی مثال که آنشته که لحن شیعر اجازه میده اما لحن رو اجازه نمیده این نقطه چی که فورو لان اهل بداتو به عنوان طائفه اجازه میده کار به شخص نداره تو لحن شخصی نیاد اینطور عقاید نامرغوش میشه به هر حال صنه دار شرط شرط حکومت و احشام داره اما یه دارن که زن اشخاص مشخص نیست که تو باشون نیستند باشه نه تو اینا حالا شرط مردهشن افراد دیگری باشه اصلا ادعی از خود اهل سنت اما این سنای شعر سنایی که سنی <تصفح> میگه ابو سفیان و به سرش معاویه بعد در آخرش میگه بچین کس اگر لعنت کنی شرمت است باب لعن الله یزید را علی الاهیدی بر رد ابن خزعلی تشدید میکنه شعری هم داره خود ابن صاحب صار بن ابوب قالت صاحب با معاویه شهریه داره واقعا نمیخوام همیشه بگم آخرش داره فعلا یزید زنه اون علی الایین شمونیه اینا تئ غزالی بعد از ابن فضاله. اینا سریع کردن این حرف حرفه اما این مفضل بسن کاملا به اینها واضحه که دیگه من فقط برای خوندن این که کار به کجاها ها گاهی می کشی ایشون عبارتی که داره که فرش است و سب و بدزبانی این بدزبانی رو ایر از سر گرفته بعد روایات من در روایات چیم کنم؟ این چافی که من دارم این خوبیش در هاشیت غالبا احادیث تخریش شده یؤفكم بالفحش ان لا تالا لا يحب فحش و لا تفهش و لا تفهشم حس بلهذا هو لیس المؤمن به بالطعام که ما عنوان ثنا کند و لا باللعان و لا الفاحش و که همون بد زبان و الفاظش الجنت و بالا تمام این سند دارید من شده نسبتاً ایشون بهتر از در یه جمع کرده ادهی کم کرده و سند هم هست و آن بخواد نگاه بکنن موزنش هم سنده شبچند نیست الجنت و حرامون علی کل فاهشن انید بعد چهار نفر و از وقتون یعظون احل تا آخر که ایکیش همین و قال لایشی آش لوکان الفخت رجلن دکان رجل سوب و قال صند اللهه از بضا اول به بیان نشون شر مفصلی که مررا چیه؟ ننشه نفاق ان الله لایوه کلپشون متفهش از سییه فل اصوا یکی دو بازارات ج مین نرنزند و بال جااب سماره کن جا این در نبیر ابی همان فقال فقط انلفوق شد و یه مقدار این رو باید خوندن اینا بیشتر ناظر دینه که اصلا خود این کار فی نفسه میکنه نفسی نیست این نرکوخش و تفاهش لی سامنه اسلام فیشه و این نه احسنن ناس اسلامن احاسنه هم اخلاقه. و قال ابراهیم و و قال یه اطابل فاهش و متفاهش و فی صورت کلب او فی جوت کلب این از عبارات غیر صحابه است وقال اعرابیون لرسول الله اوسنی به پیغمبر گفت که وسیعه سپارشی وقال علیه که به تقوال الله اینا یعنی من انتخاب میکنم بوی همون نقاط فقریه و این ام امره اون که به شیئن یعلم و هفی اگر یکه ایدی در تو از اون رو میگه فلا تا رو به شیئن فی حتی تو میدونی اگه آری در روح هست نبود این همه معلیه که مطلقه ها نصمی با اینکه که کرد یکی عیب رو گفته تو همین عیب رو میدونی خوب به قطعه خیلی عجیبه من تو نگو یکن و بالو هوا علی اگر این کار کردی گناه گون و عجر هوا لد. بعد ولا تصببن نشه ان. خوب دخلی کنه من بیشتر تمسکم به بی این رواید برای اثبات دیگه اینه که من میشه اصلا این نفسه قبیحه. صد این قاعده، این این بلا تسوبنده زاین اونجا ایب، آر، آر یعنی ایب. اونجا آر، می‌دونن فهمیدن. اما زاینش بلا تسوبنده است. آر سما سبب تو این سبب تو احتمال داره حتی حیوان جا، چون باز بودم مثلا به درو درختی سب و شرط می‌کرد. بله. قال یا زبن همار قلت یا رسول الله نراجل من قوم یا صبح کنی و علي من حل ان علیه من بحث من اون به من فرش داد من بگن خوب دقت میکنی قال عليه السلام المتصابان شیطانان اون کاره بدی کردیم تا هم با اجازیز تا هم کاره بدی کردیم المتصابان شیطانان هردشون شیطانان یه تا تعالی از هم کلمه اعوام بمنای زوزه مفعشارات نو رو سگ او او کنند از یعنی کلمه او تا تعالی اینا مثل سگ او او میکنند چه تغییر عجیبی مثل حارجان مثل سلاح به هم حمله می‌کنه مثل دو تا که به هم حمله کنند یعنی محمد مخب... مثلا من... سانشن زیر زیرش نشریش شد محمد بخوره هدف هم اینه که معلوم بشه که در ادری از روایات اصلا به انوار این که صرفی هست ولو به انعکاس در طرف مقابل و بال سباب المؤمن خشوق خوب دقت بکنید مشکو در اهل سنت سباب المسلم اما در بعضی از مصنفشون سباب المؤمنه در روایت ما هم سباب المؤمنه اینجا هم داره قال سباب المؤمن خشوق و قتال او کفر اون روایت محقق اش ولی ذبیده این می رو بخونید قال المستبان مستبان از همون باب احتیال رو رو یعنی مستبان المستبان دو نفر که به هم دیگه خوش میدن ما که بگم فعل البادی من همان اون کسی که اول شروع کرده در اون دوبوم یعنی گناه دوبومی هم به گردن نیمی افتیه حتی یعنی تضیل مظلوم مگر که مظلوم دعوا بکنه بدنه خود کاری بکنه اگر به لحظه هست اون بادی گناه بوده سونه ما داشتیم مالم یعتذر یک یه مهدش هم بود مالم یعتذر نه ما حتی یعتذی یعنی مظلوم من اینجا بینیم. یعنی اگر مجرد پرشتاده اونی که اول شروع کرده گناه به احده روز مگر که دومی دست دست دست, دست بکنه دست بزنه بعدم این آخر روایا پرده ان شاء الله خاتمه. بحث اگر موضوع فضا ایشون بحث رو مثل بگیم که می‌خویم فضا بحث لعن نشه. روایات لعن شهر سوالا کلی الله